خستگان را چطلب باشد و قوت نبود گر تو بیداد کنی شرط مرووت نبود ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نبسندی آنچه در مذهب عرباب طریقت نبود خیره آن دیده که آبش نبرد گریه ایش تیره دل که در او همه محبت نبود دولت از مرغ همایون طلب و سایه او زن که با زاغ و زغن شهفر دولت نبود گرمدت خواستم از پیر مغان عیب مکن شیخ ما گفت که در سوم اهمت نبود چون تهارت نبود کعب و بودخانه یکیست نبود خیر در آن خانه که اسمت نبود حافظا علم و ادب و که در مجلس شاه هر چه را نیست ادب لایق صحبت نبود